بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فنجمعين جلسة هست از جلسات مروري بالكتاب الحاد الدكتور صالح السنده رسيني به نظرية داروين نظرية داروين صفحة بيستو نوهز كتاب الحاد اینجا مؤلف الله حفظش بکنه میگوید من اهم تلک النظریات النظریه اوله نظریت و دروی ما دو تا مبحث داشتیم یک سری نظریه ها گفتیم یک سری تئوری ها داشتیم که اساس علمی نداره یک سری تئوری ها یا نظریه ها اساس علمی داره برای خودش حقیقتی واقعیتی داره ولی نظریاتی که برای خودش حقیقت و واقعیت نداره مجرد یک تخمین، یک حدس یک گمانه مجرد یک گمان یعنی اومدن با یک گمانی، یک حدسی اومدن این کون، این آفرینش را بی صاحبش که خب، نظریه اول نظریه داروین این نظریه داروین چیه؟ چیکار کرده آقای چارلز داروین یهودی لحصیل هم میگه و هیلتی با صفحه فی کتابی هی اصل الانوح میاد این داروین نظریش رو ارائه میده در کتاب اصل انواع. حالا به زبان فارسی خودمون همون منشه انواع یا خاصگاه گونه ها خواستگاه گونه ها که گفتم در این کتاب بحث انسان رو میکنه که اساس پیدایشش از میمون بوده معلفش هم که دیگه معروفه گفتم چارلز داروین الكتاب الذي أصبح اللبنة الأساسية لنظرية التطور, التطور للحادية إن كتاب خشته الأساسية إن تأورية إن نظرية بحث تكامل الحادية سيبحث أن نظرية تكامل كنسان بشراف كاردة بحث تكامل يفتح زيك ميمون. وقد أقام داروين مدرسته على أساس أن الأحياء لم يخلق كل واحد منها خلقا مستقلة أساسي این نظریه این تئوری بر اینه که مخلوقات همشو هر چیزی شما مخلوق می‌بینی از ابتدا این نبودن بلکه یک مخلوق دیگه بودن شدن این مخلوق هر مخلوق شما می‌بینید هر زنده‌ای ان الاحیاء لم یخلق لو واحدون من منها خلقا مستقلا هیچ از این کدوم مخلوقاتی که زندهن خلقت مستقلی نداشتن آفرینش مستقلی نداشتن بلکن الله لها اصل اونول خیلی یه طول با صیقا همشون یک اساسی داشتن اون اساس چی بوده؟ یک سلول تک یک سلول ساده اساس خلقت آفنش بر میگرده به یک سلول ساده. تو مخد تتطورور و ترتقی این سلوله خودش اصلا اراده و فکر و عقل داشته اومده خودش رو داده بعد گونه های مختلفی از خودش تولید کرده یکیش انسان شده یکیش نمیدونم هرچه که از ابتدا که انسان نبوده ولی خب این پیشرفت کرده این سلوله شده انسان خب ولی سوسکش، ملخش، حالا اسبش دیگر گونه ها را چی بگیم؟ انشاءالله بحث شاهد اومده ثم اخذت تتطور و ترتقی پیشرفت کرده اومده تکامل یافته من طور الى طور از مرحله به مرحله دیگر حتی نشه الانسان و بقیت الكائنات تا اینکه انسان و دیگر کائنات به وجود اومده و طبیعه في ذلك كانت تختار الاصلح للبقاء و طبیعتم اون بحث اکنومی زمین و بحث حیات زندگانی بر روی زمین اون اسلح رو انتخاب کرده برای اینکه پایدار باشه برای اینکه باقی بمونه یه قاعده ای هست میگن که قویتر باقی میمونه قانون جنگل هرکی قویتر برای سر قدرت. و هذا ما عبر عنه به مصالح و با این عبارت ازش یاد میکنه الانتخاب الطبيعي، انتخاب طبیعی قوی تر باقی مونده اون که زیفتر از بین رفته یا بقا الاصلاح پایداری یا آماندگاری جنبه ارته جنبه احتر جنب این جنبه بقدر مونده یعنی این سلول این سلولی که پیشرفت کرده و شده انسان باقی مونده ولی خب گونه های دیگه از بین رفتن وتجمع مدرسة داروين في ثناياها كبار ملاحدة العالم اين مدرسة بزرگان ملحدين دار خدش جمع کرده الذين يرون أن الإنسان لا خالق له دیدگاهشون بر انسان خالقي آفريننده اي نداره و انه وليد سنو سنوات انسان تولد مولود ميليون سال تكامله بشرفته من التطور الطبيعي طبيعي ازون تكامل طبيعي والنشوء والارتقاء پیدایش پیشرفت بي بین انواع مختلف در مقابل دیگر گونه ها و دیگر مخلوقات این انسان بوده ارتقا یافته وقت اهتم الملاحده کثيرا به هذه النظريه ملحدین خیلی همدان به این نظریه پرداختن به این تئوری تئوری یا حدس گمانه آي واقعا یعنی این توری اساس الی داره یعنی واقعا یا فقط Allah همون بحث تخمین که تخمین که تخمینه حادثه ولی خواهی واقعا واقعاً این حادثه میتونه واقعیت داشته باشه یا این چیزی که خود خداوند در قرآن میگه یه الا فقط فقط گمانه که پیرو ارزش بودن شک در چیزی گمانه چون گفتم نظریه هست یعنی واقعیت علمی نداره لانه في نظرهم ان الوحیده الوحيده التي يمكن بها کن معند دیدگاه این ملحدین ملحدین اینه که تنها تفسیری که میشه در این بحث ارائه در مقابل این آفرنش و هستی همین نظریه دار بینه و الحیات دون الحاجت الى خالق و اینکه این زندگانی نیازی اصلا به خالق و نداره ول واقع انها نظریه هشتون غعیفه در واقع یک نظریه پوچ و بیارزش و ضعیفه غیر متماسک اصلا محکم نیست چرا محکم نیست؟ ولی فقط از محلت بخاطر همین این نظریه رو به زوال و سستی و, و ضعفت کتیران فی اصلا لحظه خصوصا در این اصد در این زمانه بیشتر این نظریه به انزوا کشنده شد به ضعف کشنده شد حالا قبل از اینکه معلف وارد بشه انتقاداتی که روی این نظریه شد از لحاظ علمی واقعی حقیقی چرا این نظریه این تئوری حقیقی واقعی نیست؟ خب شما برید به دانشگاه ها سر بزنید خب ما دانشگاه داریم با آزمایشگاه‌های های بزرگی داریم که بررسی می‌کنند سلول‌های سلول های بدن انسان بدن انسان سلول داره این سلول ها که تغذیه می با اون آب و با اون اکسیجنی که ما تنفس می‌کنیم و الى آخر این سلول هایی که زندن زندگانی دارن این سلول در درون خودش DNA داره و آرنه ای داره این تو زیست سناسی ما تو دبیرستان خودم من هم رشته خودم تجربی هست. قشنگ استاد هنوز اون صداش و زمزمش تو زهنمه موقعی که برامون سخت بود کروموزوم نمیدونم دین ای آر اینا همه بحثات تو دانشگاه همه میخوندیم داخره. کسانی که همینجا مخاطب این من هستنم اگر هم رشته شون انسانیه یا ریاضیه بالاخره یه چیزی از دین ای آرنه شنیدن بالاخره یه کسی اون اون سرکار شاد بوده خصوصا تلاسمی ها، مینور و ماجور یا مشکلات جنتیکی، بلاخت تو خانوادت کسی شما پیدا می کنید که مثلا این مشکل رو داشتن و رفتن بازماشگاه مراجعه کردن که اون مشکل جنتیکی چون در بیارن که, از، که ارسی یا ارسی نیست از نسلی دیگر بهش رسیده یا نرسیده، چرا؟ سوال؟ چرا؟ این باید اینا جواب بدن، چرا؟ من جواب میدم حالا نگاه کنید، بحث علمیه گوش کنید با دقت بری تحقیق کنید مگر نه اینکه انسان جنش درش نهفته هست و باقی میمونه و من به عنوان پدر به فرزندم, در... فرزندم که به دنیا میاد از جن من توی ژن فرزندم ثبت میشه میگن مشکلات ژنتیکی وراسی یعنی ارسی خب یه کسی که مثلا به فرض مشکل کمخونی مثلا تالاسمی داره میدونن مثلا آقا این مشکلش ارسی یا نه مثلا کمخونی ها انواع داریم شاید یه کسی کمخون باشه ولی مشکلش ژنتیکی نباشه یعنی ارسی نباشه خب سنتو بحث ازدواج پیش میاد قصه ها هم میاد به یکی از ژن و این مسائل خب حالا کاری به این ندارم اون مسئله که برام مهمه مثلا شما بانک های ژنتیکی تو دنیا دارید از مشهورترینش تو بوسطن آمریکا هست به اسم فامیلی دی که اونجا تست میدن و تو اون بانک نگه میدارن مثلا بر یکی بچهش رو گم کرده، یکی پدرش رو گم کرده خوصا تو اونجایی که زنازاده زیادن و بعد طرف میخواد بدونه اصل پدرش از کجا بوده، کی بوده، کی نبوده میره اونجا آزمایش میده یا مثلا مشکل ژنتیکی داره، ارسی داره میخواد دنبال راه، راهکار و درمانشه میره به این ستادها خصوصا و این مؤسسه ها رجوع میکنه تا اینکه مشکلش رو در بیاره یا گفتم فامیلی خودش یعنی اون خانواده خودش رو پیدا بکنه چه از طرف پدری چه از, لازم چه از طرف مادری خب کار اینها چیه؟ چه کار میکنن؟ اینها برای خودشون بانک توی اون بانکشون مثلا بالفرض من پدر خودم پدر بزرگم از کجا اومده کی هست؟ و تا آخر تا یک جایی سختی داره این ای این دین ای به سخت میرسه از من تا کی تا اون اولین انسانی که روی زمین اومده که آدمه علیه السلام. این علم دانشگاهی میگم. علم قرآنی بگید، سنتی بگید، توراتی بگید، انجیلی بگید. این دارم از دانشگاه ها دارم بهتون میگم. برید خودتون تحقیق کنید. برید اصلا تو این سایت فامیلی دی ای رو بنویسید تو گوگل برید تو این سایت نگاه بکنید. تبلغاتش نمی‌کنه ولی خب پولیه. برید خب یه سری معلومات اونجا هست میتونید ازش بگیرید ترجمه بکنید راحت. برای خودتون یک زبان بلدید دیگه راحت میتونید بخونید. خب مثلا بفرض من با ایکسی ادریکی میخوام بدونم که من تو نسل چندم بهش میرسم. خب نسلها گفتم هویزیه من تا آدم هویزیم. من میتونم بفهمم با طرف تو جد من تو جد بیستم با هم مشترکیم یا جد ده هم مشترکیم قشنگ حتی تا جایی که تو اونجا مشخص میکنه آقا تو پدر بزرگان اجدادت سیاد بودن یا نمیدونم کشاورز بودن آهنگر بودن حتی به این مسائل هم میپردازن از لحاظ طبیعت و از لحاظ اون جنی که مثلا این تو درش هستی نشون میده آقا شما اصل کارتون یا مثلا کوهسانی بودی تو کوه ها زندگی میکردید یا تو دریا زندگی یا مثلا کنار دریا زندگی میکردید همه اینها بررسی میشه تو آزمایشگاه ها چرا چون دی ای گفتم دی ای که هر کدوم تو بدنه خودمون اون دی ای خودمون بانکی داره یعنی خودش که معلومات گذشته رو حفظ میکنه از منم به نسل آینده تا میره تا بچه و بچه نوه و نویره و همه اینا انتقال پیدا میکنه من مثلا نسل من دیگه حفظ میشه در بچه هم. و پدرم همه همی تو در بچم هم خب چرا به سخف رسید؟ چرا به آدم رسید؟ چرا بلاتر از آدم دیگه کسی دیگه نیست؟ یعنی میمونی در کار نیست آهوی در کار نیست اسبی در کار نیست چرا؟ چرا همه انسان های زمین که عق دارن، خرد دارن نسلشون بی میرسه و اونم آدم علیه السلام الان دیگه بعد میاد یک جن مشترکی دیگر غیر از آدم دیگر هم هست اونم نوح علیه السلام چرا؟ دو تا این مشترک تو جنا هست از کجا آمده؟ این چیه؟ خب این نیاز به تحقیق داره نیاز به بررسی داره نیاز به دقت داره هر, هر فیکر انسان که میشنه نباید باور بکنه قرار نیست که یه کسی اومد یه تئوری یه نظریه دادیگه آه نه این چارلز داروین اومده نمیدونم اروپایی دانشگاهی اومده پروفسور تو ها نمیدونم زیست شناس بوده اومده نمیدونم تحقیق کرده روی استخوانا نمیدونم فهمیده که قابل انسان اساسش میمونه چطور اساسش میمونه بشه با چه علمی علم که گفتم الان این علم ژنتیک اصلا نقدش میکنه خب حالا ببین مولف چی میگه و يمكن تلخيص اهم اوجه بطلان هذ النظريه میتونیم خلاصه بکنیم وجوه بطلان نظرية والتوري من خلال كلام العلماء والباحثين النقاد خصوصا السخنان بزرگان أهل علم اندشواندان ومفكرين في النقاط الآتية در ان شانتو نقطة ميه برسي أنها نظرية قاصرة نظرية توري يك نظرية يك محدودية کوچیکیه و ذریقی داره روش تحقیق شده یعنی این نظریه خیلی کوچیکه یعنی اومدن فقط از یک گونه اونم انسان اومدن بررسیش کردن که حالا ببینن که مشابه کدوم یک از مخلوقات بر روی زمینه حالا گونههایی دیگه چی میگه یک گونه فقط بر روی زمین داریم از مخلوقات بقیه مخلوقات تکلیفشون چیه مثلا میگه فهیلم توفسر جميع الذوار الحیاثی هذا الكون نمید کل زندگانی بر روی زمین بررسی بکنه این نظریه این هیه مثلاً لا تقدم و تفسیراً لأصل الحشرات نایمد این نظریه بپردازه به مثلاً اصل گونه حشرات پشه، سوسک، نمیدونم، زنبور، نمیدونم، ملاخ خب، این ها چی بوده؟ معا انها تمثل ثمانی ملمه من مجموع حیوانات هرچند که از جمله حیوانات و حیاتی که روی زمین هست از اون مخلوقاتی که زنده. خب اشتاد درصد مخلوقات حشرات هست بر این زمین فهل تطورت تلک الحشرات؟ آیا واقع اینا هم تکامل یافتن؟ یعنی اون سوسک تکامل یافته هست؟ یا اون پشه تکامل یافته هست؟ هم بقیت علمه یا علیه؟ یا اینکه نه همینطوری خلقت شدن این پشه هم روز پشه بوده ولی ما لم یجر يجر عليه قانون تطور چرا قانون تکامل روی این حشرات ما تطبیق نمیدیم؟ چرا نیم این ها پشه چی وجوده؟ کدوم سلول وجوده؟ چه سلولی وجوده؟ سلولش با ما یکیه یعنی اساسی که به سلول بر بگرده دیگه خب این سلول چرا شده؟ من چرا نشد؟ مثلا نشدن پشه؟ کما آنها نم تقدم تفسیراً للطیور خب اینا هم از روی گونه مثلا پرندگان مثلاً بررسی میکنند چرا نرفتی پرندگان بررسی میکنید خود چی بوده اساس فرند؟ فهل ما یطیر طیر من الحیوانات قد تطور یعنی حتیون شاهین و بازو کابوتارش هم و انواع گنجشکش آیا اینا هم پیشرفت کردن؟ و مادکن اصل سوحاد تطور اصلش چی بوده؟ یعنی شاهین کلاه یکی بودن از پیشرفت کردن؟ یعنی این از چی به وجود اومدن؟ اساسشون چی بوده؟ یعنی خب کلاق متفاوته باشایی نوع غذا شنون اینسان ها غذاشون یکیه ولی خب پرندگان غذاشون یکی نیست پروازشون یکی نیست الی اشیاء اخرى ترجع الالحیا یعنی خب اینا پرندگان نوع حیوانات حشرات و اینا همه احمال شدن همه اینا چشپشی ازش شده. و مقیمت نظره یهلتقوم به تفسیر تصمیم ب مییم من غاه التيی من مفترات تتنه این نظری هایی که درصد از مخلوقات مخلوقاتتی که زندن زندگانه دان بر روی زمین نگاد روی اون ها بحث و تحققیق کنه و در چی میخوره؟ شما مدی فقط, فقط انسان رو در نظر گرفتید فقط انسان اقا اینطوریه و خب بخی مخلوقاتی در صد شما چشپوزی از، ازش کردید. خب این اولین اولین ردیه که علما دادن بر این نظریه. پس این نظریه محدوده ضعیفی داره که مدن فقط یک گونه و هم انسانو بررسی کردن 90 درصد که هش 99 درصد مخلوقات از اششپوشی کردن. اینجا مؤلف حالا دیگه دستشو پایین گیره گفت که 90 درصد کی کسی اعتراض وارد نکنه. شما نگاه بکنید تو حیات وحش چقدر اینطوری. شما مثلا یک لانه زنبور یا مورچه رو نگاه بکنید چقدر مخلوق دوشه. دیگه با 6 میلیارد، 5 میلیارد انسانی که بر روی زمین اصلا قابل قیاس نیست. ثانیاً عجز ارباب و این نظریه و انصارها عن بیان کیفیت انتقال الحیام من جمادی به کائنات حیه دوهمی که و موندن اینا که بیان بررسی کنند اون تئوریشون که چطور زندگانی از از, از یک جمود خشکی، از یک چیزی که خشکه، یه چیزی که مرده هست. چطور این چیز مرده زنده شده زندگانی پیدا کرده شده موجودی که زندگانی داره موجودی که نفس میکشه چطور من یک سلولی خاک شدم نفسدار شدم بینا شدم شنوا فید از سالتم کیف وجدت الحیاه و فجعه چطور یه های ذره خاک شد یک سلول جامد خوش یک انسان چطور تبدیل شدن یک سلول خوش که بی احساس بی عاطفه بی فکر که نشانه و نبینا مونم نطقی داره برای خودش ناطقم نیست چطور این همه اعضا درش پیشرفت پیدا بکنه و تکامل پیدا بکنه و بشه انسانی که حیله احساس و عقل هم درک داره و احساس یو جی ملحد جواب میدم ملحد و تو جی بو کن نظریه و نظریه شنو نمیان پاسخ میدم ملحدی بان انها در تطور انما حصل فجعه صدفه یه هوی اصلا دور یه دفه سبحان الله یعنی از خودش اون سلوله اراید داشت سلولی که بسن خاک بوده هیچ احساسی هیچ درک شوری نداشته خب چطور تصمیم گرفت که چشم رو اینجا بذاره وشونه انجا نذاره گوش را انجا بذاره گوش مثلا به عقب ن باشه مثلا زبانو انجا بذاره نطق و حروف ولا يخفى أن الصدفة ليس جوابا علميا الجواب العلمي اساسا شما بگيد آقا خودت راحت کردی يي دفه يي شود انسان يي دهو ترقيت ترقيت شو انسان بيرش بل هي جواب يصادم العلم كما سيتبين عن قريب ان شاء الله إنسان مصادمه اصلا برخورد میکنه با بحثهای علمی گفته همون بحث ژنتیک رو شما در نظر بگیرید اصلا با علم مخالفت داره این نظریه توری ثالثا یک شما نظریه توری دارید کل بحثهای دانشگاهی ژنتیکی و فلان و دینه آرنه کروموزوم و فلان و همه اینا رو اصلا زدید نابود کردید بیاساسش کردید به خاطر یک حدس و گمان ثالثاً أنه عند التأمل فيما اعتمدت عليها النظرية نجد أنها تنطلق من وجود تشابه بين الأحياء ولذا قرر داروين أن أصر الإنسان غير بسبب هذا الأمر أصلي النظرية برأساسي هي أنه أمده كده كهذا ببينه چه قناه هاي با هم ديگر مشابهات داره ديدن كهذا شبهه إنسان از نزد ترين مخلوقات بخوام بخوان حیوانات بخوام بخوان بخوان دست و پا و انگ و پنج انگشت و خب چون پس تشابه در شکل و قیافه هست پس انسان میمونه چون تشابه در ظاهر هست مزرعه چون انگشتش پنج تا پس انسان میمونه همین طریفی ما ذکر هنا ما انشده الشاعر الملحد الزهاوی این زهاوی ملحدی شاعره میگه خب از باب لطافت اینجا میگه که یاد میکنه میگه حیثو یفخربانه من نسل قردن هالک فخفروشی میکنه اینکه نسلش از میمونی هست که منقرس شده میگه فیقول ما نحنو الا اقردو من نسل قردن هالکن فخر لنا ارتقاؤنا في سلم المدارهی میگه ما جز میمون چیزی دیگه نیستیم از نسل یک میمونی که منقرس شده ما افتخار میکنیم اینکه پیشرفت کردیم اینکه تکامل یافتیم و به این درجه از درک و شعور رسیدیم به این درجه از درک و شعور رسیدیم اقول معلفیه دکتر سندی میگه که مما تزعم ها در نظریه ان وجود الامراض المشترک بین الانسان و الحیوان یا دل على وجود تشابه بینهما از جمله مسئله که توی نظریه بررسی میشه میگه که خب بیماری ها هم بررسی میشه مثلا بیماری که در انسان هست در میمون هم هست خب و هون ایوس ارباب با حد نظریه خب بس ما میمانا سوال میپرسیم شما مثلا از جمله چیزهایی که گفتی تشابه هایی که تشابه وجه اوجود تشابهی که بین انسان و میمون هست گفتید که قا مریضی ها مریضی های انسان و میمون مشترکه خب بریم اشکال نداره ما قبول کردیم انسان سرمان میخوره میمونم سرمان میخوره هم سرما میخوره لیماد علا یکون الانسان متطورم من فرق و انسان موش باشه چرا یعنی انسان تکامل یافته از موش باشه لانه می اشتراکان في خیلی من از بیماری ها و بیماری ها با دیگه مشترکه کس سرطان مثلا مثلا سرطان انسان سرطان می گیر مثلا موش آزمایشگاهی چه دیگه خب میام بررسی میکنم اون بیماری که تو انسان هست تو موش هم هست ولا جواب عند هؤلاء پاسخی داره شما دیدید دیگه علاق یا دیدی از بینش آب. آب بینی داره سرما می چرا سرما میخوره چرا انسان بعد بوز باشه یا علاق باشه و من خرافات هذه النظريه ايضا عايز اقول لك خرافات حقیقت گفتم نيست يعني یک تئوری باطلی که اصلا با عقل و علم ال... در تضاد است الزعم بان الاعضاء غير المستعمله تضمر بمرور الزمان اعضای بدن انسانی که استفاده ازش نمیکنه به مرور زمان فرسوده میشه، آغار میشه یا از بین میره ذیف میشه. و تنتقل ضامر الی الاجیال در هر هیمونی انسانی اون عضو ذیف شده انتقال پیدا میکنه. اون عضوی که پیشرفت کرده، تکامل یافته، اون باقی میمونه. اما لتی تستعمل فتتقوا و تتطور اون عضوی که استفاده شده پیشرفت میکنه، قوی باقی میمونه. ولدا یقولون كانت عنق الزرافة طويلة لأنها محتاجة إلى أن تأكل من الأشجار، فتم فتمد عنقها. جردن مثلا مثلاً خيلي بزورج، شراؤشون ساي كده بخوره، في جردنش كشيدة شو ثم تطور الأمر شيئا فشيئا حتى أصبح العنق طويلا، إن جردنه هيه هي هي هي سوال بازم ما جواب ما یعنی پاس از اونها میخوام خب ولماذا لم تطول عنق الماعز چرا گردن بوز بزام نیاز داره گردنش بالا بیاد که که بخونه از اون درخته بخوره چرا گردن بوزه مثل زرافه دراز شده مع که محتاجه كذلك الى اكل الاوراق ومن الاشجار نیاز داره از درخت بخوره سرشو بالا بکنه راحت به اون شاخ و برگ درخت برسه و هي تمد عنق ايضا من منذ الاف السنين هزاران سال که این بوزه این گوسفنده سر جداره بالا میکنه گوسپند نگوسند من از پایین میکنه علب بخوره. ولی خب بزا دیدیم میگه دطره پاش بالا میکنه سعی کنید خودش رو بکشه بالا از اون درخت از اون بالا بخوره چرا گردنش بلند نشده مثل ذراه ایقی ننج پاسخی نیست دنبالش هم نکرد پاسخی ندارم براش. کممایت ک رو دروین اسلف نه کن دوویش ن کتیف داربین دا میکنه میگه همه انسان ها مودار بودن. وأنه عندما تطور وتحول تحول هذا الكائن إلى إنسان سوي سقط كثير من شعره لعدم استعماله أو الحاجة إليه سبس با پشرفت و تكامل موهاي إن إنسان ريخته مثل ميمون دقی نيست، فشماله دقی نيست كل موهايش ريخته مگر موهاي خاصي مثل موهاي ريشي و موهاي بعد از اين تكامل يفته، بعد از اين پشرف کرده لكنه عندما جاء ليفسر فسر عدم وجود الشعر عند النساء وبعد تو مردانی به قضیه رو برسیل میکنه خب چرا پس زن ها مواشو کمتره مثلا زن چرا ریش ندارن کما هو اندر رجال اعتذر به عدر عجیب یک عذری میاره عجیب و انگیزی بخاطر فرار بگنه از ایراد میگه حیث و زعم انها در ضروری لجمال المرأ و جذبیتا میگه چون ضرورت زیبایی زن ایجاب کرده مونه داشته باشه بیمو شده <تصفح> ضرورت اجتماعیش ضرورت زیباییش ایجاب کرده ریش نداشته باشه این ضرورتی از کجا آمد؟ یهو خودش هم اینطوری ریش های زن ریخ پشماش ریخ بعد مردها ها شدن پشمالو کجاست این که میگن که یهو مثلا این تصمیم گرفته شده یهو این تکامل پیش اومده تکا تکامل خب باید مرد و زن با هم یکی باشن چرا یکی نیستن؟ هذا الجواب من الممكن ان یقتنع بهی لو كان النظر للموضوع صاحب اعتقاد بوجود خالق حکیم لكن هذا لا يقربه الملاحدة يعني يقر، اگر مثلا این زیبایی یا ضرورت اجتماعی را اگر ما در نظر بگیریم اگر خالق آفریدگاری بود به قول خود انکارش میکنن با وجود خالق و باری و آفریدنده و آفریدگار و پروردگار بله این نظریه درست بود این قسمت از نظری این قسمت آخرش درست بود که ضرورت اجتماعی و زیبایی زن ایجاب کرده که آه پشماش بیشتر ریخته بشه از مردا حکیمه داناس الله میدونه این جذبه رو چطور در زن ایجاد بکنه که اون مثلا مرده متفاوت باشه با اون زنه و بدنش مثل مرد نباشه تا اون انگیزه ایجاد بشه برای مرد به نسبت اون زنه خالق حقیقیه دانسته از آینده و از اینکه چطور این نسل بشری ادامه پیدا بکنه جنس با جنس دیگر چطور نسلشون تجدید بشه تمدید بشه و ادامه, ادامه پیدا بکنه. اما اینکه شما بگید خالق آفریدگاری نیست یه هوی. یه دفعه اینطوری تصمیم گرفته شده بدون هیچ پشتبانه سابقی نه اصلا این ممکن نیست و محاله خب میگه ایضا حاول دروین ان یفسره وجود شعر فی منطقه ترس من الانسان و عدم تساقطهی مع بقیه شعر الجسم الذي سقط فی زعمی خب میاد تو کتابش هم و کتابهی گفتیم مون بعث گونه ها را که میکنه میاد بعث انسان را میکنه میگه چرا مون روی سر مونده ولی بقیه بدن مو ریخته مثلا مو مثلا چرا مثلا این پشت دست مو هست کف دست ولی مو نیست مثلا میگه مثلا توی سر میگه که چون سر ضربه میخوره مو گذاشته شده برای که یک آیقی باشه یک پوشیشی باشه اگر سنگ خرد مثلا دردش کمتر بیاد فیقول بما ان الراس معرضا كثيرا للضربات فقط كان من الضروري ان يبقى الشعر چون ضربه زیاد سر میخوره ضرورت ایجاب کرده که موها پرمو باشه سرام پرمو باشه یا لله للعجب <تصفيق> الله اکبر <تصفيق> واقعا چه تعجب داره فما دع عن خب مگه پیشونی ضربه نمیخوره بینی ضربه نمیخوره کدام یک بیشتر ضربه میخوره خصوصا اونایی که بازی فوتبال و بسکت و نمیدونم فلان میکنه. و همه يتعرضون لسدمات اكثر یعنی واقعا کتاب تصادف میکنه اول برخوردش با فرق سرش یا پیشونیش مدیر فرمو یا وقتی که شما روی زمین میفتید با فرق سر میفتید روی زمین یا با سر با صورتتون میاد روی زمین اصلا نبا کنید عقل شما بلاخره اندیشه دارید فکر دارید شما میتونید از عقل خودتون به کار بگیرید میتونید بفهمید این آقا با یک نظریه علمی داره باعتون بحث میکنه بحثش علمیه یا بحثش پوچ و بیگوده است. برای فکر ما رو یَدک میکشه و و می‌خواد از اون به عنوان یک ابزاری برای سازی ایجاد میکنه در ذهن ما یعنی اومده ما رو توهی و پوچ پوچمون بکنه با اون نظریه پوچش اینقدر ما رو نادام فکر کرده این منده خدا اینقدر انسان نمی‌تونه یعنی درکش بکشه که آقا ضربه که انسان می‌خوره خب پیشونی هم ضربه میخوره. اگر قرار باشه که آقا ضربه به سر وارد بشه خب به پیشین هم وارد میشه چرا باید سر اینجا مون داشته باشه پیش اینجا نداشته باشه و ما دعن شعور داخلیت فلجسم، جسم حالا مون طرف احساساته که در درون انسانه همونطور که زخ بر تن انسان ایجاد میشه رو دلم انسان ایجاد میشه هل که وجود وجود هل هده از سبب ایضا اینم بخاطر همینه یعنی احساسات عاطفی هم به وجود همینط و دیگر آلا موهای بدنه هم میتونه جایی از مدن داره نداره جایی از احساس عاطفه داخلی قلب درکه به اختصار اینه نظریتون هشتون متدعیه این چرنده این پوشاله این پوچه این چیستانه فقط اومدن بازی کردن با اون حرفای پوشالی و چرند اومدن بازی با ما کردن اومدن ما رو بی دین و بی اساس کنن اومدن ما رو نگه دارن از پیشرفت از بیشرفت مدنیتمون از لحاظ اینکه ما حقل خودمون رو به کار بگیریم ما رو یک حیوانی در نظر گرفتن که آقا این حیون مجبور شده که بشه انسان خب این خلاصه پاسخی بر نظریه داروین دیگه بحث و ردیه ها زیاده ولی من همین چند تا نقطه که معلف اشاره کرد و یه نقطه که خودم گفتم اکتفا میکنم خب بریم به نظریه بعدی به نظریه بعدی نظریه الانفجار العظیم بوم یک انفجار بزرگی یک ذره بوده ترکیده این ذره گرد سلول ترکیده شده این جهان و هستی اوکی ها چطور حالا خصوصا این نظریه رو سیوی هاکی هاکین خیلی زیاد مطرح می‌کنه نظریه فوتون رو نمیدونم خب حالا ببینیم این نظریه واقعا اساس داره اساس علمی داره آیا اینم هم مثل همون نظریه داروی؟ همون همونطور پوشالیه یا نه یا اساسی داره آره خودش خب خلاص این نظریه میگه خلاصه تو هذه النظريه این تئوری و این نظریه ان اصل الخلق كان کرهه ذات خالیت واحده اینکه اساس مخلوقات گرد ساده تکسلوری بودن. حساس تمام مخلوقات یکسللو تک گرد. وه که رأس دبوس ریزن بوده به اندازه سر سوزن یا کوچ تر سر سوزن سر سنجاب. كانت تصبح في لا زمان ولا مکان. این پرواز میکرده این سلوله <تصفيق> نه زمانی بود نه مکانی این قصه <تصفيق> مادر بزرگ هست والله با حتی مادر بزرگ هم این قصه ها <تصفيق> نه زمانی بوده نه مکانی بوده خود به خود این سره شنا میگرده وسط هیچ زمانی هیچ مکانی خب چی شده باید؟ بعد ثم من فجرت فجر یهو ترکید این سلوله یهو ترکید قبل ۱۵ میلیارد سنه قبل از انزه میلیارد سال، فنتجه اجها عن هذا الانفجار تکون هذا الكون بالتدربج نت درنتجه یا نتیجه این انفجاره این ترکیدن بعد از تکامل شده این هستی این کیهان این جهان با بتوت درجه یا فاصل هذا الكون کل هو ذل رأس دبوس هذا أحساس المخلوقات هم سر السوزاني هل ساهم يتكسلون خب هلو بريم سؤالات ما ترى بشي بطلزينة مخلص سؤالات ما ترى بشي أو سؤال الذي سيبقى سوطن يضرب ظهور هؤلاء الملاحدة وانسؤالي كبير شلق كبير كامر ملحدين من أين جاءت نقطة الدبوسة هذه إن سر السوزاني سلو لازك جامعات نخز زماني بود نمكاني بود خب إن سر السوزاني این نقطه این سلول گرد از کجا آمد کی داشت هدایتش میکرد همینطوری خودش به وجود اومد یا به وجود ای داشت این سر سوزنه از کجا آمد خب این جوابی آرش نداره خب یه،, یه چیزی بوده که این چیز شده درسته؟ یه چیزی بوده ما بر به همون چیزه اون چیزه کی او رو به وجود آورد ناچیز که نبوده که خودتا نقرار میکنی یه چیزی بوده. شدیم ما خب اون چیزه از کجا اومده عدم لم يجيب عن ولن لن يجيب نه جوابی دارن و نخواهند داد اینو یقین داشته باشید چرا واضحه دیگه ثوما لما كانت هذه الكليه ساكنه ثم قررت فجاه ان تنفجر چرا یهو تصمیم گرفت که این سلوله منفجر بشه چرا یهو تصمیم گرفت اراده از کجا بود یعنی خودش از خودش تصمیم داشت تصمیم می گرفت برای خودش اراده داشت برای خودش که یهو یه مثلا منفجر بشه من الان تصمیم گرفتم که منفجر بشم منفجر شدم بعد برای خودش تصمیم گرفت آقا این گونه انسان بشه این گونه بشه پشه و حیوان بازی با بود عقل انسان بعد وقت و ما ميزهت هذه اللحظه التي انفجرت فيها بالذات عن غيرها طب خب این که این انفجار رخ داد خصوصا اون لحظه ای که این انفجار این سلول رخ داد خصوصا سلول انسان حالا غیر از اون بقیه سلول ها یک سلول شد انسان، یک سلول شد است چه تفاوتی داره این لحظه با دیگر لحظات؟ اون لحظه ای که کره زمین شد، آب شد، ماهی شد، نهنگ شد، از شد این لحظات را کی تعیین کرد؟ کی تعیین میکنه که آقا در فلان روز باید این سلول به بترکه و در فلان روز اون سلول کی تصمیم میگیره برای این زمان شما میگید لفظ زمانی که نبود مکانی هم نبود خب یهو مکان به وجود اومد و یهو هم زمان به وجود اومد کی به وجودش آورد کی در دایره زمان قرارش داد خب شما مثلا اگر میگید که آقا عمر مخلوقات 15 میلیارد میگه عمر مثلا 1 میلیارد خب 14 میلیارد سال گذشت بعد شد انسان خب قبل از انسان خب گونه دیگه بودن چیزهای دیگه بودن خب اونها هر گونه هم برای خودش یک سلولی داشته یعنی بعد اون سلول ها همشون یک سلول برمیگردن یعنی این سلول هی تکامل یافته بعد یه تصمیم میگیره که بشه هیوون بشه حشره، بشه پرنده بشه نهنگ بشه زمین و خورشید و برای خودش تصمیم گرفتن این سلول ها چطور تولیده نستگردن این سلول ها تو ما کیفه یونتجو انفجار و نظام بدیرن چطور این انفجار؟ منظومه دقیقی را ایجاد میکنن چطور یعنی مثلا شما در نظر بگیرید یه بمبی رو بیارید یک بمبی رو بیارید بعد مثلا این بمبه پر از بارود بکنید بعد آهانم وسطش لابللاش هم بذارید آهن بذارید حالا موتور ماشین هم بذارید توش اگه تونستید آلا بعد یهو مثلا این بمبه مفجر بکنید حالا موتور ماشین هم توش هستا بدن این ماشین هم خاصیتم توش بذارید نداره بعد یهو مثلا این بمبه مفجر بکنید بشه ماشین مرسدس بشه ماشین براید عقل شما چی میگه بم انفجار بوف ترکید بعد ها تایر اینجا قرار گره فرمونم اینجا قرار گره بعد اون موتور ماشین اینجا و صندلی ها اینجا و قشنگ تا اینسان دیگه بیاد فرمون رو بگیره رو هندگی بکنم و هل انفجار یوناس و یو نوام یعنی واقعا شما تو میتونید یک انفجاری را برای ما بیارید ساماندهی شده سازمان دهی شده یعنی یک انفجاری ما نمونه ای شما برای ما مواد منفجره بیارید بعد توی اون مواد منفجره یهو برای ما ماشین توریق بکنید اگر تونست ثابت بکنید تونست درستش بکنید این قضیه رو یعنی خردریز ماشین تایر و بدنه و همه چیزی تو رو بریزید تو یک جایی تو یک قفسی بعد یه بمبی اونجا بذارید بعد اون بمب رو مفجر کنید بعد یهو بشه موتور یا بشه بشه ماشین اون وقت که این نظریه میتونیم بگیم حالا یک وجهی داره بر صحت خودش انفجار دیگه شما اول یک مثال طبیعی رو بیارید مثال حسیش شو بیارید برای ما کجا انفجار تولید کرده یه چیزی که از مجموع اشیا ترکیب شده منم چش دارم اینجا منم گوش دارم اینجا منم بینی دارم اینجا من نگفتم انسان گفتم یک ماشینی که احساسم نداره ولی من احساسم دارم من قلب دارم نظامی که در من اصلا قابل قیاس نیست با اون ماشینه من کمتر این چیز گفتم اون ماشین چطور میشه یه چیز دقیقی را مثلا یک انفجار ایجاد بکنه کیف انتجت نقطه من ماده جامده حیات و عقل و مشاعر یک نقطه ریز سلول عقل و درک و شعور و فهم و احساس و عاطفه و کال این روح و روان در ما ایجاد بکنه و ما زنده بشیم نفسی بشه که بعد با تناسب اون زندگیمون از اکسیژن استفاده بکنیم برای حضم غذا و تنفس بکنیم و زندگانی خودمون را بچرخانیم با اون اکسیژن نه با اون آب H2O نه با او با اکسیژن ماهی که نسیم که آب شوش داشته باشیم چرا من ششدار شدم؟ آب ششدار نشدم؟ چرا من شد؟ نشدم ماهی این تناسبه را که ایجاد کرد؟ ملحد میخواد جواب بده و یجیب الملحد به انه حصند تفاعلات انتجت خلايا اجتمعت و بعد الانفجار به هده النظام البدیح به کلی شید میگه این انفجاره خود به خود تصمیم گرفت که مبدعانه حکیمانه بیاد یک خلق و یک گونهی تولید بکنه پر از این احساسات و و درک و شعور و این نظام حسی روحی وجدانی را ایجاد بکنه در ما بعد از این انفجار سلول ها با هم دیگه یکی شدن و تصمیم گرفتن که آقا این سلول ها چش بشه تصمیم گرفتن که آقا این سلول ها گوش بشن یعنی این سلول ها دست به دست هم دیگه گذاشتن و برای خودشون تصمیم گرفتن اشکال نداره سلول تصمیم میگیره دیگه درسته شما بیایید یک انسان سرش رو از هم جدا کنید تکی تکش بکنید سلول ها رو از هم جدا بکنید یا یکی از این نمیگم زنده رو این کار نکنید باش. همون مرده که زیر خاکه سلول ها جمع بکنید سلول ها جمع بکنید شما اینکه ادعا دارید خدا مثلا پشه رو میزنه. شما پشه اگر بالا شکسته رو نمیتونید زنده نگه دارید و اون پشه رو درمان بکنید درمان رو. نه اینکه ایجاد بکنید شما یک پشه رو درمانش نمیتونید بکنید بعد ادعا دارید که سلول ها با هم دیگر اومدن دست یکی شدن شدن پشه شده انسان سلول با هم دستوی یکی شدن انسان که همه درک داره، شعور داره، نمیتونه بال پشه رو درمان بکنه. دیگه چطور میخواد اون پشه رو تولید بکنه؟ و به اون درجه از تکامل برسونه. اون هم سلول های اونها قابل قیاس با سلول های تن نیست. چرا شما نمیتونید زیاد همین سلول های پشه های مرده رو مثلا شما بیاد جمع بکنید و بکنید یک پشه؟ و اذا سوئلو کیف حصل ها دل اجتماع لالخیات چطور این دسبیه که شدن این سلول ها اگر ازشون بپرسی چی میگن و کیف بوجود دل من الجماعت چطور از این خشکی و از این جمود زندگانی وجود اومده جواب چی میدن؟ اجابه کلملح به بلاده اومده میاد با با اون کمال اون فیگوری که گرفته برای خودش فکر خودش که داره می نازد بگید حدث هده تلق و صدفه، اومد، یه دفعه اومد، اومدن با هم دست بیکی شدن که بشن انسان بشن فلان مخلوق اینا صدفه اند هنده المال این یهویی چیه دنس این ملحدین؟ رب العالمین المکونه اون رب فربردگار و آفردگار عالمیانه لانه کل دواهر انده هم تو علقو هر چیزی بهشون گفتی؟ میگه یهویی هر چیزی گفتی؟ یه دفعه این یک دفعه خود خدا اون کسی که ایجاد کرد خود خداست ولی نمیخوان اسمش بذارن خدا میخوان یک یک عدمی را تو ذهن خودشون تخیلش بکنن که اون عدمه بدون اختیار بدون توانایی بدون هیچ حکمتی اومده دست یکی کرده اون مجموعه از سلولها و این انسار به وجود آورده بطور انسان بازی گرفته اشهالله انسان. به صدفتی لانه کل دوار عندم تعلق به همه زواهر آفرینش اینا ربطش میدن به همین بحث یهوی. یعنی هر حرفی بذاریم میگن نه یهوی یهوی. به صدفتی وجدت السماء، یهو شد آسمان. و وجد الغلاف الجوی و زنب وجود اومد. نمیدونم این چی بوجود زمین وجود اومد و وجود وقت جوی فشار هوا بوجود و وجودت الغازات انواع غازات بوجود میاد و وجودت سحب آبراه بوجود میاد و وجودت ارض قابله لی الحیا زمین همشود دیگه پیدا کرد برای زندگانی و وجودت آنها رودخانه ها بوجود میاد و وجودت البحار دریا ها و وجودت الاسماک میخايه و تو دریا وجود و وجود انسان انسان برای زمین خشکی نه زیر آب با وجود اعضا مناسب للاحتیاجاتی اعضای انسان ها و حیوانات و مخلوقاتم بر حسب نیازشون یک ای مثلا تصمیم گرفت که این دم داشته باشه این ماهی نمیدونم آبشوش داشته باشه فوجود و و وجود و بصر و وجود بصر یهو چشم وجود اما یهو گوش وجود اما به چش گفت ببین به گوش گفت دستور دادن که بشنوه با وجود قلبون یا دق قلبی هم که بزنه تپش داشته باشه و وجودت و دم الحمراء و کوریت و دم بیضاء یه هم تصمیم گرفتن که آقا با هم دست بیگی بشن سلول های مثلا بالفرز اون گلوبول های قرمز و گلول های سفید رو تشکیل بدن توی خون گلوبول گلوبول اونم متناسب که آقا این باید این میزان در خون انسان باشه این قد باشه اونم با تعداد شمارش به عدد متناسبه یعنی دقیقه یعنی مثلا بالفرض شما مثلا وقتی که مریض میشید خب میان اون گلبولوها به دادت و بعدم هر کدوم از این گلبولهای سفید و قرمز مسئولیتی دارن یکی مسئول حمل اکسیژنه یکی حمل نمیدونم پادزهره یا فلانه تو بدنت و فوق هذا وجد العقل والاحاسيس بولا تاع زمان درک إحساس. كل هذا حصل عند الملاحدة صدفة همينها يهوية بودة نازم الحدي لا يشك عاقل أنه قانون صدفة باطل هر عقلي هر مفكري هر كذلك عندك شعوري داشته باشه بدونك إن نظري و توري باطل ففي بدائه العقولي لا يمكن أن توجد صدفة حقائق منتظمة همكاس مدونه يك انفجار يك كار يهوي نميشه مثلا يهو یه چیز ترکون مثلا تبدیل به انسان نشکرد تبدیل به ماشین نشکرد هیچ عقلی نمیتونه قبول بکنه مثالونی وضح المقام برای اینکه این قضیه واضح بشه میگه ایک ایك مثال میزنی لو قدرنا اننا وضعنا مجموعه قروده في غرفه شما در نظر بگیرید مجموعه از میمونها رو بیاری منجا و وضعنا ماما مآلاتون کاتبه وراقن لیعبته بیها بیاییم بيه تفتر و قلم بیاری کنارش رو ثم عود بعد برهة من بعد من بنظام بعد مدة زمان بيوم قلم دفترنا برشه مجزأشين، هلا كتابي برمتقليف يكون بخوني، فهل من الممكن نجد أمام كل آلة من هذه الآلات قصيدة غزلية رائعة تنافس قصائد كبار الشعراء؟ سألت وأقول داريد دازقاي تايب بيورين، فريندرام بيورين، كمبيوتر بيورين، دفتر قلم بيورين، بس أنا يمكن أعرف شنو أنا دفتر قلم بيجي ميا بيجي ملا دازقاه شوب بيجي ملا هاي الشيء هذه أدوات. ببین کنارش رو بذاریم بعد یهو مثلا ببینیم مثلا اون میمونه شده شاعر شده مثلا حافظ شده سعدی ببخشید داره. این مثال ها رو میزنم یعنی چون بالاخره این شعرات تو ذهن ما مثلا عبدالرض یعنی حتی سبحان الله مثلا تو دل انسان یک شاعر مثلا بگه که میمون بوده مثلا مثلا همین شاید خیلی خیلی مثلا بهشون بر بخوره آه چرا مثلا یهو اسم بحث میمون اومد اومد آوردید مثلا بحث سعدی رو آوردید چون خیلی بهشون بر بخوره چرا بهت بر میخوره؟ چرا بهت برخورد ؟ خورد؟ میمونه آقا جمع کردید اووردید تو یک جایی گذاشتید، دفتر و قلم گذاشتید بعد یهو بوستان صدی تحویلت داده شو اوورده یک شعر با احساس قشنگ غزلی حس شاعرانش گل کرده اومده از جمال زن و از زیبایی زن و از موها و چارکاش بهت مثلا هم به الفرز و از گونه هاش و نمیدونم چشمش چشم درشت آهو و فلان و اینو همه برات مثال میزنه از زیباییش میمون بیاد غزل بگیارات بهبه اصلا ممکنه به نظر شما وقتی که این کارو کردن بعد بیان حرف بزنن نه اینکه فقط یه نظریه یه حدسی گمانی بزنن بعد بیان عقل خامه أو أربعة باتشرا كمبراه بكرة، أصلاً خام بس كهين ربه مثال دومي، مثال الثاني لو وضعنا الآلة الكاتبة أمام طفل يعبث بها، أصلاً ده ثم نظرنا في الورقة بعد حين تايب فهل يعقل أن نجد أنه كتب معادلة رياضية من الدرجة الثانية وقام بحلها هايضة؟ نمیگم یک معادله و یک مثلا فرمول درجه یک ریازی فرمول درجه سه چهار بیاد یک بچه اول ابتدایی میدونه فقط یک دو سه این عدد حروف رو میدونه خب بعد بیاد مثلا بالفرد یه و یه بچه رو بذارید قلم و دفترم دستش بدید دزگاهی هم بیا کنارش بذارید بعد بیاد مثلا بهش بگید آقا چهار زره زره چهار یه نه من های شیش تقسیم برد چند میشه؟ بچه اول بوده دی، سه یا بچه که بگیم تو توی سوم بوده ریاضی نخونده ریاضی نخونده میتونم ببینیم یک دوم تشریح میده ولی آیا میتونه معادلات ریاضی را برای محل کنه مثال سوم لواضعنا في صندوق هم. قصاصات صغير يسعني خيرا بيارين بعد أوراق راتك تباربو كوني برزمتوش مكتوب في كل واحدة منها حرفة ويكار كونه ما زين قطع أوراق يكار في رابين بيسيم ثم رج رجا شديدا سفاستي كوني شبين ساندوكا. ثم فتحنا يهو بوازش بكوني فهل يصدق عاقل أن الحروف قد تجمعت فكونات خطبة حماسية عظيمة سمشوا بغوار ميكوني تمسان يهو مثلا این درس ردقیه که بر الحاد داریم یهو مثلا شده مثلا یک خطبه و یک درس و یک موعظه معصر که تأثیر بذار باشه مثلا این حروف کنار هم دیگه یهو مثلا تکون بدید یا این موبالتون تکون بدید یهو مثلا جوهری ازش بدید یا مثلا تبدیل بشه مثلا سخنان من مثلا میگه میشه حرفای موضوع دقیق تر بیاد ازش یهو مثلا این حروف رو علی با تا صاجیم ها بعد هایو تکون بدید بعد بشه مثلا بوستان سعدی سطفه هستید، شما یه بار این کار رو بکنید تا دخل برامو این جس با این دقت با این چش بو این سلول و گوش شما یک بار نه نمیگم بوستان سعدی نمیگم بوستان سعدی آقا شما یک جمله بنویس یک جمله بنویس یک جمله یک سطر بنویس نمیگم حالا یک پاراگراف با پنج شش تا خط نه اصلا آقا خود امتحان کن در چندمین بار موفق میشی در چندمین بار موفق میشی یک جمله را بسازی یک جمله را بسازی همون جملاتی که اه اه اه تو مدرسه بهمون یاد داد بهم. من پدر و مادرم را دوست دارم من میم رو جدا کن تو یک ورقه میونم جدا کن بعد تو یک صندوق را بریز کل این حروف من پدر و مادرم را, را دوست دارم بعد این حیط کن بده کنار هم دیگه بریز نگاه کن با این کار به کجا میرسی آیا احتمال هست که اون جمله درست در بیاد در چند اومین بار به با که میشه مثال چارم آجور رو بلند بکنی دست ما یا سنگ بعد مثلا این خونه هست من اینجا توش هستم خب من اونجا بشیدن بعد سنگ دست من بیدید پل بکنم پرد بکنم توقع دارید که این پرد کردن من یهو بشه مثلا خونه منزل فهل یمکنه نجا در دلتفتن دلت بیت جمینا مثلا یهو مثلا نگاه کنم باقیم پت ببینم این ها و آجرایی که كا پرد کردم شده مثلا یک خونه در پنجره داره الجواب کل ما سبق همه گذین ها عند کل عاقل هر کسی که درک داره فهم داره لا ممکن نیست و اما عند الملاحد فهنا ملحد میگه بله لا امکانش هست يمكن أشخاص سانجوبيرز يقول بقولش السرد بعدي هو وقد وجدت أن أحد الملاحد وهو اسم إسماعيل أدهم الذي هلك سنة 1940 قد ألف كتابا سماه لماذا أنا ملحد؟ مؤلف ألف إسماعيل أدهم صلى الله عليه رفته كتاب برهن بشتشر ما ملحداً. قرر في قانون الصدفة بحماس ومعه بحماسي. ين قانون الحاضر الصابد بكونه، فهو يقرر أن مثل العالمي مثل مطبعة فيها من كل نوع من الحروف الأبجدية مليون. ميجا مثل شعب خنمي مونة، قانون الصدفة قانون يهودي. ميجا مثل ياك شعب خنمي مونة مليون حرف توشاس، وقد أخذت هذا الحروف الحركة والاستدام. ومداني الحروف وهم دقيقة بعرفون كهاداني ييج مليون حرف. فتشته و تشته میره وتن بعد شروع کردن به جمع شدن به برنامه ریختن به تکامل به نز ثم و نذ گرفتن تو متتباع وتن حل سپس هر کدوم یک جوی خاص خودش قرار گرفت هر کدفی دو رت لاله حیه ادامه داره. میگه خب این چاپ که اومده این یک میلیون ه رو با هم دیگه این نزمان ضبات بهش بده پس یه وج کتاب اصلا ان رو اللففا دارویین خب این بعد از نتیجه اون چاپخانه بشه کتاب چی؟ کتاب نظریه دارین از همون کتاب اصلا با یا همون نشأت یا منشأ انواع انواع های موجودات بل جمیع المؤلفات ستاخذ دورها فی الظهور خاضعه لحالات احتمال و وامکان فی نهاییه یعنی شما این یک میلیون حرف رو کنار هم دیگه بذارید میشه کتاب داروین یا کتاب فلانی این ها همینطوری دارن به وجود میان یعنی انسان‌ها هم همینطوری یعنی با این همه سلول با میلیارد تا سلول تو تنت. همینطور به همین طوری ها کرده به سادته یعنی همین طور همین راحتی, یعنی راحتی مثلا چوب خانه رو میزنه این همه حروف توشن و این حروف هم تصمیم داره برای خودش میگیره که بشه بوستان یا گلستان نزدش نزد این بنده خدایی که میگه من ملحدم با هذا الارتجاج لحروف المطبعه ان تخرج لنا جميع الكتب حروف را تو یک صندوق بریز یا تو یک چاپخانه بذار بعد چاپخانه همین همینطوری بدون که برنامه بهش بدی چاپخانه مثلا آهن رو بریز تو یک دستگاه بعد و مثلا ماشین تاویلیت بده میگه میشه و هذا القول ليس قول رجل مصابن فی عقل فکر نکنید که این نظریه توری را یک شخصی میگه که مشکل مریضی تو مغزش داره او معتوهن یا مثلا ناقص الاغلو بی خرده نه بل هو قول رجل کنه حاصلانه دکتورا فی ریاضیات این دکترا در ریاضیات داشته دا و یو جیدو ثمان لغات 8 لغت دونر روش مسلط بوده و معا باوجود این حرف رو میزنه الی دیون که رو ای عاقل هر عاقلی این حرف را اصلا نمیتونه درکش بکنه نمیتونه قبولش بکنه هر عاقلی ردش میکنه بلی و قبی حتی کم عقل هم بشی نمیتونی قبول بکنی ای که مثلا الله بدون یک کارخانه مثلا یک ماشینی تولید بشه لکن هو للحات این للحات ده جوج اعتباد دین با شریعت الی یسیل الانسان مخلوقات المخلوقات که انسان کانساره بیخرد میکنه انسانو بیهوده و پوچ میکنه انسانو حیوان میکنه خودشو خودشون اقرار میکنن خودشون میگن ما حیونیم ما میمونیم ما نگفتیم تو من نه نه اپ میگم من میگم ان کلمو فوقك فقط کاف فی نقض الادی منصری یعنی سخن خودش هم ردی بر خودشا نقض میکنه سخن خودش حرف خودش رو نقض میکنه فاین یزعم ان هذه الحروف اذا تحركت و اصدمت فسوف تخرج كل الكتب حسنا خب مین نداره اگر این چابخونه تکم بخوره با اون یک منو حرفی که توش هست انواع کتاب ها ازش در میان خب لكن من النادی سیو حرکوها خب کی باید این چابخونه رو تکم بده که کتاب بستان و گلستان ازش در بیاد اذ انها تحتاج و في بدایه العقول الى محرکه خب باید کسی حرکتش بده تکونش بده یک کسی باید اون حروف توش بریزه کی ریخدیم این حروف توش و تحتاج و الى میا کسی که مركب دباد توش بريزه ورق توش بزاره تحتاج الى مكان يقبل اجتماع الحروف وادي جاي باشه كه حروف روش يك برقي باشه كه روش چيده بشن اون حروف وتحتاج من يصف الاوراق ويرتبها حتى تأخذ كل صفحه عددا مماثلا من الاسطر وادا ميزون بشن كه آقا تقين برگه اين قد ثم تحتاج الى من يجلد هذه الكتب ويفصل بعضها عن بعض بيد يادي كتاب از كتاب جلد براش بگیره و نمیدونم سحافیش بکنه اذن لم تکن صدفه احسن یهویی نبوده پس اگر لم تکن الصدفه وحدها کافیه في خروج هذیل کتب پس یه ده یهویی نبوده کتاب ها اینطوری بوجود مدن بل لابد من قبع باید یک باشه که بیاد مرتب بکنه سحافیش بکنه و که کسی باید اون دزگاه را تکن بوده و بود من اراده باید یک اراده پشتی بانش باشه, باشه. و بود من أي أنه لابد من فاعل قادر حكيم بايد حكمته تشوه حكيمانه باشه كأن كلام سخانك خارج مشه قابل درك باشه بادي كسام كين كرومي كونه مقتدر باشه حكيم باشه با تابانو باشه وتأمل معي في مثال مثال رمي الحجارة السابق لو استبدلنا الحجارة ببيض مثلا هل سينتج رمينا ذلك البيت مثلا شما در نظر بگیرید میگم مثلا همون پرت کردن هم مصاری خب سنگ ها مثال سابق خب حالا به جای سنگ تو تو رو در نظر بگیرید مثلا مثلا من تو خونور رو اینجوری پرتش بکنم به عنوان یک سلول مثلا یهو تو خونور مثلا شکسته بشه مفجر بشه مثلا بعد بشه خونیه حتما جواب میدید نه ولی میشه ملحدی نه میشه اذن فلا بوده من تصمیم و لا بد من حكمه باید کسبا تصميم بگیره و کارش حکیمانه باشه نمیشه نمی شه و یک خون بر خونه ساخت و هکذا ذرات هم دیگر ذرات کن هستی اندماج ضمنته الى بعضها بحکمه تمام این سلول ها در تن ما قرار گرفته حکیمانه بوده این رگای خونی این انگشتا این بند انگشتا همه حکیمانه بوده به حیث ان های به بطريقه معينه كانت ذهبا این سلول ها کنار هم دیگه قرار بگیرن میشن طلا به حیث اجتمعت بطريقه معينه كانت ما و هلوا اگر کنار هم دیگه قرار بگیرن میشن آب هیدروژن و اکسیجین. H2O میشه آب یه جا میشه آهن یه جا میشه تلا ولو قالا جمیعا متفقون علی انس صدفه لاتون تجا نظاما همه هر خردمندی متفقه بر اینکه که نمیشه یک نظامی را ایجاد کرد تنظیم را ایجاد کرد ولی یمکنن تکرر نظاما واحده هم چرا نمیشه این نظام ادامه پیدا بکنه یعنی بیاد مثلا اه اه اون نظام تکرار بشه است. من سلولم اینطوری قرار گرفت یهوی قرار بر این نیست که فرزند من و بعد فرزند فرزند بازم دوباره این قضیه تکرار بشه یهوی بود یه بار بود چرا این با این نظر داره تکرار میشه چرا ادامه داره پیدا میکنه چرا دوباره من میمون نشدم چرا همونطوری من انسان باقی مونده ولا لا یمکنن تبروز فی هده امن اثار القصد یعنی نمیشه یعنی بدون این ترتیب و این نظم با این دقت که انسان درش قرار گرفته اگر خالق پشتیبانش نبود نمیشد که اینطوری ادامه پیدا بکنه و نمیشد که این تصمیم گیری ها همینطوری صورت گرفته باشه یه کسی هست که تصمیم گرفت یه کسی هست که این خلق آفرینش رو به وجود آورده ان الحقیقه التي باقشت كاليك ساعة متمر شدار لخبتك سافيه آخر كي نظريته هم بشه إن الحقيقة التي لا تجحد أن الملحدة أغبر الناس في أهم قضية إن حقيقتك قابل نميشي بنهانش كال إنك ملحد كم خردترين إنسان بروي زمينا بخردترين نقل نقل كم خردترين لكما معدبان بشهن بكين چرا لابدك بحثاتك يرائشون وإن كان قد يكون ذكياً في غير آشاد مثل زكاواتي داشته باشه زيركي داشته باشه دار بعض اونو تجربه ولكن در بحث حسنية خودش دار آفرينش واقعاً بخارده رحم الله رحم الله الذهبي و رحمه الله اذ قال في آخر ترجمة ابن روان الملحد امام ذهبي دار زندگی نامه ابن رواندی ملحد چنین میگه اللذی کنه فی غایت الذکا که خیلی زیرک بوده میگه لعن الله الذکا اون زیراکی اون باوشیش میگه خدا لعنتش بکنه خدا لعنت بکنه اون زیراکی اون باوشیش بلا ایمان که هیچ ایمانی توش نبود و رضی الله عن البلاد مع تقوی و خدا راضی باشه از اون سادگی که هم را با تقویست و بعیدن هنه هی لکتوبه فاصله بگیریم از این و ا نجل القرآن قد أبان عن الحقيقة في كلمات قليلة حقيقة أفر نشر خيلي خلاصة وارب إن بحث بيدو يشرو ما ترحمي كنا حيث قال تعالى أم خلقوا من غير شينا مهو الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الله خيلي جالب قزية أفر نشر إن جما ترحمي كنا بيقى. أم خلقوا من غير شي مقين احتمالات شما دع زهن خطون بپربوردید این این آیات شما بیاید برای خودتون تو ذهن خودتون بیاید این اینطوری ترسیم بکنید اینطوری نمیگم بکنید نه بیاید این جنین تصور بکنید این جریانی که الله داره اینجا مطرح میکنه میگه ام خلق من غیرشه آیا احتمال داره که اون ذره که که اینجانب بحثش کردن که منفجر شده این خلق وجود اومده این هستی وجود اومده آیا احتمال داره اون ذره نبوده باشه نه خب باید یه ذره باشه اینا هم گفتن که یه ذره ای باید باشه حالا اون ذره ای که وجود آورده از کجا اومده خب این یک همال خالقون یا اینکه نه اون ذره خودش اومده خودش به وجود اومده مثلا من یک ذره ای بودم عمو سر سوزنی بودم خودم اومدم خودم وجود آوردم یا اینکه خالقی نباشه خب اون ذره دیگه نیست اگه خالق نباشه دیگه ذره نیست خب پس باید اون کسی باشه که یک ذره رو به وجود برده باشه حالا یا اینکه خالقی نباشه که اون ذره نیست و یا اینکه اون ذره بوده و خودش تصمیم گرفته که باشه و خودش تصمیم گرفته چطور باشه خب لازمه شیه که اون سلوله قبل از پیدایش از خودش اراده داشته باشه یعنی من بشم خالق خودم آفرین کدوم یک از ما با اراده خودش آفریده شده؟ یک مخلوق شما را بیارید که مثلا بی پدر باشه بد شده باشه انسان یعنی بدون اینکه اون اسپرم و تخمک زن, زن مرد با همدیگه قاطی بدون اینکه که با دیگه قاطی بشن نرماده شما باید یک مخلوق انسانی بیارید بدون این اسپرم ها و تخمک ها به وجود اومده باشه شما میگی مصادی برای ما بیارید اصلا هست نیست چرا حرف علکی میزنید چرا این چرا اندیات رو بخورده ما میدید پس یا اینکه خالقی ای نباشه که امکان نیست که لازمه عدم وجود خال قدم وجود نظره است و یا اینکه انسان خودش اون ذره رو به وجود برده. خودش خواسته منفجر بشه و خودش خواسته که چشمشو اینجا بذاره گوشش اونجا بذاره کدوم یکی از ما این اینجنی اراده ای داشتیم که اینم بازم باطله ام خلق السماوات والارض الخودتون انا آسمون و زمین چی؟ انسان میتونه این رو وجود بیاره همینطوری این آسمون و زمین زمین مثلا خورشید جا قرار گرفت که زمین دورش بچرخه و این زمان 24 ساعت به وجود بیاد سال به وجود 365 روز میگه همینطوری بوده ماه در یک جا دور زمین بچرخه خورشید خر... زمین هم دور خورشید مگه همینطوری بوده ستاره ها و ها ناهید و تارود و زحل و اینا همینطوری وجود اومدن مگه در یک راسته در یک مداری با هم با هم دیگه تصادف بکنن قرار بگیرن بله لا یوقنون مشکل دارن در ایمانشون در دینشون در یقینشون نسبت به الله جل و علا پرا شک و شبه و هذا مفهمه عربی و لا لم يحمل شهاده في یک عربی یک بادیه نشینی که مدرک از دانشگاه هم نداره ناکنید چی میگه ولا درس النظریات نیچه ولا لفاظه وال دارروین این نظری اشخاص هم نخونده نندین نا چه و نه للفواظه نهدارین هیچ کدوم از اینا رو نخونده میگه آ نطقت منط فطرت حسسوی یا حین سوئیله به معرفته از اون با دیشی سوال پر چوب بودم پی بردی که خلق آفره وجود داره فقال قال الببر تدل على بهیر اون پشکل حیون خوش خب دلیل برینه کهقاین پشکل شطوره و این مطوع حیون حیون راه على الحمير و این حیون و مدفوع هم بر اولاغ میده و آثار الاقدام دل على المسیر رد پاها هم بر جاده میده فسماعون ذات ابراج آسمون با این ستاره ها و بحر ذات امواج دریا با این همه امواج خروشان اما ی دل ذلك على العليم القدیر دلالت نمیده بر آفریدگار توانا هذی الفطره این فطره پاکه التي تدل عنا لكل حادث محدتا که هر وجودی به وجود آورنده ای داره و علیه آن لکل مخلوق خالقه و هر مخلوقی آفریدگاری داره ولذا ترس صبي الّذي اذا ضرب خلصتا التفت و صرخ يكبر شيه یهوی پس گوشیش بزنی یهوی چه ندون کی نه دونکی زده داد میزنه کی مرو زاد اسبوش بزنیدش داد میزنه کی مرو زاد و قالا من ضرباني وذلك لانه مفتور على ان كل حادثه فلا بد من معده خود خوت یک بچی کوچیک میدونه که این زدن بدون اینکه کسی اورا زده باشه به وجود نمیاد باید کسی رو بزنه که دردش بیاد مع انه ما درس نه نظریه سببيه این نظریه سبب سببی و این نظریات اصلا نخونده اصلا هیچی نمیدونه سابب ومساببين وهي شينا مدنة لكنها الفترين فترة فاكة فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فترة فاكة قابل عباس جدا الناس إن حقيقته بلغون نظري وتورياس إن حقيقته إن باتش يهوب من قد يقي إنه يمبير كي مرزا أما الملاحدة فأناس قد انتكست فترة تماما ملحدين فترة شوارو نشودها ومن يولد الله فتنته فلن تملك له فنن تملیک له من الله شیعه اون کسی که الله نخواسته هدایت بشه هم قابلیت هدایت را نخواهد داشت و ندارد خب به همین قد اکتفا میکنیم انشاءالله تا فردا انشاءالله اگر تونستیم که حالا اعلام میکنم فردا انشاءالله هم باز بار دیگر با شما خواهیم بود با جلسه ششم در ادامه مبحث الحاد سبحانه کنالا بحمد سبحانه کنالا بحمد و الله اللہ محمد و علیه محمد